قصه های یوگوسلاوی نویسنده نادا چورچیا پرودانویچ مترجمان کامیار و مهیار نیکپور ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده مریم موجی سلام و درود به همه شما شنوندگان خوب و عزیز کانال هزار افسان دوستان و همراهان عزیز داستان باشلیق رو شروع کردیم که یک تزاری بوده که لحظات آخر زندگی به ستا پسراش وسیعت میکنه که ستا خواهرتون رو به اولین خاصکاری که براشون میاد بدین وگرنه یعنی نفرین من تا پایان عمر همراه شماست و بعد از مرگ تزار، برای هر خواهر یک خاصگار میاد و علا رقم مخالفت دو تا برادر بزرگتر برادر کوچکتر خواهرا رو به خاصگاراشون میده تا برن و متاسفانه خاصگاران اونها یا غولن یا دیو وقتی که سومین خواهر هم با قولی که به خاصکاریش میاد میره بعد از چند روز برادران نگران میشن و تصمیم میگیرن به دنبال خواهرانشون برن تا جای اونها رو پیدا کنن و از سلامتشون مطمئن بشن وقتی که وارد مسیر جستجو میشن از کوهی بالا میرن و هر شبی که توی مسیر جایی استراحت میکنن اتفاقی براشون میفته و برادری که به نگهبانی میشینه با قولها و دیوهایی مبارزه میکنه تا شب سوم که برادر سومی با قولها و دیوهایی که بهشون حمله میکنه مبارزه میکنه و اونها رو از پا در میاره اما آتیشی که روشن کرده بودن بر اثر ریزش آب خاموش میشه و برادر سوام به جنگل میره تا بتونه آتیشی رو برای برادراش پیدا بکنه و اونجا رو از نجات بده. از درختی بالا میره و از دور آتیشی رو میبینه که به دنبال اون آتیش وارد مسیر میشه. حالا بریم ادامه قصه رو بشنویم و ببینیم که آیا برادر سوام موفق میشه آتیشی پیدا بکنه یا نه و داستان چی میشه؟ با هم بشنبیم بالاخره تزارزاده به غاری میرسه که آتیشی در کنار اون روشنه و نه غول آدمخوار دور اون استادن و آدمیزادی رو به سیخ کشیده و کباب کردند. در اون حوالی های خیلی زیادی از آدم ها دیده میشد از دیدن این منظره ترس بر دل شاهزادی جوان نشست و بر اون شد که برگرده و فرار کنه اما دیگه دیر شده بود چون دیوها اون رو دیده بودند پس به ناچار خودش رو برای اقدامی دلیرانه آماده کرد با شادی فریاد زد: سلام دوستان گرامی من مدت هاست که دنبال شما میگردم دیوها بهش خوش آمد گفتند و اضافه کردند اگه یار ما هستی خوش اومدی من خیلی شما رو دوست دارم من حتی حاضرم جونمم برای شما فدا کنم قولها بهش گفتند اگه دوستمایی بگو ببینم آیا حاضری گوشت آدمیزاد بخوری و وارد گروه ما بشی؟ تزارزادی جوان جواب داد بله که حاضرم شما هر کاری بکنید منم میکنم. خب پس بیا بشین کنار ما و این گوشتی رو که بید میدیم بخور. یکی از غول ها ای، از گوشت آدمیزاد رو به تزارزاده داد. اون وانمود کرد که داره اون رو میخوره. اما در حقیقت نخورد و یواشگی اون رو به پشت سر خودش انداخت. قول ها بعد از خوردن گوش گفتند، خب، حالا باید بلند شیم و به شکار بریم و غذای فردامون رو آماده کنیم. همگی از جا بلند شدند و را افتادند. نه قول بودند و تزارزادی جوان دهمین ده نفرشون. قول ها به تزارزاده گفتند، ما به شهری که تو این نزدیکی هاست میریم و گوشت مورد نیازمون رو از ساکنان اونجا تهیه میکنیم. اونجا تزاری فرمان روایی میکنه که در برابر ما کاری از دستش بر نمیاد و زبون و درمانده است. ما سالهاست که اطبای اون رو میخوریم. گول وقتی به شهر رسیدند دوتا سنوبر کوهنسار رو از ریشه کندند و اونها رو بر حصار شرط که دادند و به جوان گفتند. از تنه درخت بالا برو. وقتی که به باروی شهر رسیدی اونجا بمون تا ما دومین درخت سنوبر رو بهت بدیم. تو باید سر اون رو بگیری و بالا بکشی و به اون طرف دیوار تکیش بدی تا ما اینها رو مثل نردبانی برای وارد شدن به شهر استفاده کنیم تزارزادی جوان از دیوها فرمان برد و به روی باروی شهر رفت در اونجا ایستاد و فریاد زد که من میترسم وز من اینجا خیلی بد و خطرناکه نمیتونم این درخت لعنتی رو بالا بکشم خواهش می کنم یکی از شما بیاید بالا و به من یاد بدید که چه کار باید بکنم. یکی از دیوها بالا رفت و سر درخت رو گرفت تا اون رو به اون طرف دیوار تیکیه بده. هنوز سر درخت در دست دیو بود و درخت کاملا در جای خودش قرار نگرفته بود که تزارزاده شمشیرش رو از نیام کشید و سر اون رو گوش تا گوش برید. سر و تنی درخت رو با همدیگه به پایین دیوار شهر انداخت. بعد دوباره فریاد زد که خوب، حالا فهمیدم که باید چیکار کنم. یکی یکی بیایید بالا. دیوها بدون اینکه از سرنوشت قول اول آگاه بشند، تصمیم گرفتن از سنی درخت بالا برن و خودشون رو به دیوار شهر برسونن. اما هر کدوم از اونا که به روی دیوار می رسید، شاهزاده همون بلایی رو بر سرش می آورد که بر سر قول اول آورده بود. وقتی که سر آخرین دیو هم، با شمشیر تزارزاده بریده شد و در پای دیوار افتاد، شاهزاده به وسیله یه درخت به شهر وارد شد و در خیابانها و آن اون راه افتاد. صدایی از جانداری به گوش نمی رسید. و خانه ها به نظر خالی و خلوت می رسیدن. تزارزاده به خودش گفت بدون شک این دیوها تا آخرین فرد ساکنان این شهر رو دزدیدند و دریدند و خوردند. همونطور که ویلان و سرگردان در کوچه ها راه می رفت به پای برج بلندی رسید. نور شمعی یکی از پنجره رو روشن کرده بود. جوان از دیدن این نور زندگی خیلی خوشحال شد. وارد برد شد و پلکان اون رو گرفت و بالا رفت. وقتی تزارزاده در اتاقی رو که شم در اون می باز کرد و وارد اونجا شد از حیرت و تعجب بر جای خودش خشک شد. دور تا دور اتاق با ظرف و جام های زرین آراسته بود و دیوارها ها رو با مخمل های زر بفط پوشونده بودند در اون اتاق جز دختری که بر تخت خوابی دراز کشیده بود کسی دیده نمیشد. دختر اونقدر زیبا و دلربا بود که جوان نمیتونست یک لحظه چشمش رو از اون بگیره اما وقتی که اون داشت بیسوان زرتار اون رو نگاه میکرد حرکت سایه ای رو در پشت ستونه دید. چون بالا رو نگاه کرد، ماری رو دید که بی سر و صدا از روی دیوار به سمت دختر میخزه و میخواد بین دو چشم اون رو نیش بزنه. جوان که خیلی چالاکتر از مار بود، چاقوش رو کشید و دستش رو بالا برد، کارت برقی زد و سر مار به دیوار میخکوب شد. جوان بعد از انجام دادن این کار گفت، حواست باشه، جزمن کسی دیگه ای اجازه نداره این چاقو رو از دیوار بیرون بکشه. بعد به سرعت برگشت، از برج بیرون رفت، یک بار دیگه از حصار شهر بالا رفت و به کمک دو دوتنه سنوبر که مثل نردبانی به کار می رفت، خودش رو به اون سمت شهر رسوند. از اونجا به طرف غار قولها دوید، آتشی رو از اونجا برداشت و با عجله به سمت دریاجهی که دو برادرش در کنار اون به خواب رفته بودن اومد و دوباره آتیش رو روشن کرد بعد از لختی خورشید دمید و برادران از خواب بیدار شدند بعد همگی را افتادند و به سمت شهری رفتند که برادر کوچیک قسمتی از شب پیش در اونجا گذرنده بود. در اونجا تظاری زندگی میکرد که قبلاها مردی دلی و توانا بود اما الان خیلی افسرده و غمگین بود. و هر روز در غم از دست دادن رعای خودش و ویرانی شهر دامن دامن عشق میریخت و ترس اون داشت که بولها تا آخرین فرد رعایاش رو بخورن. اون از دختر یگانی خودش هم سخت نگران بود چون میترسید که به زودی نوبت اون برسه. تزار اون روز صبح زود در شهر به گردش پرداخت و اون رو مثل هر روز خالی و خلوت دید چون اده کمی از مردم شهر که هنوز زنده بودن از ترس قول ها در سوراخ سنبه ها پنهان شده بودند. تزار همینطور که در شهر قدم میزد، به کنار حسار رسید. دو درخت سنوبر رو که از ریشه بیرون اومده بودند دید که به دیوار تکه داده بودند. با عجله به سمت اونها رفت و منظری در کنار اونها دید که از حیرت بر جای خودش خشک شد. نه قول آدمی خار آزارگر در کنار دیوار افتاده بودند و سرشون گوش تا گوش بریده شده بود. تزار از دیدن این منظر اونقدر و خوشحال شد که مردمانش رو صدا زد تا به اونجا بیان. اده کمی از ساکنان شهر که مونده بودن از زیر زمین ها و سراخ بیرون اومدن و دور فرما روای خودشون جمع شدند. خداوند رو سپاس گذاردند و ازش خواستند که نجات دهنده اونها رو شادکامی و سلامت عطا کنه. هنوز تزار و ساکنان شهر از بحت و حیرتی دیدن این منظره بیرون نیومده بودن و نمیدونستن چه اتفاقی افتاده که خدمتکاری دوان دوان خودش را به تزار رسوند و خبر داد ماری که میخواست دختر اون رو نیش بزنه با چاقویی که به سرش زده شده به دیوار میخکوب شده. تزار با شنیدن این خبر به کاخ دوید و یک راست به اتاق به دختر خودش رفت و ماری رو دید که با چاقویی به دیوار میخکوب شده. خواست چاقو رو از دیوار بیرون بکشه اما هرچقدر زور زد نتونست اون رو از جاش تکون بده تزار فرمان داد تا در پایتخت و همه شهرهای دور و نزدیک کشور اون جار بزنن که هرکس خولها رو کشته و سر مار رو با چاقو به دیوار میخکو کرده هرچه زودتر خودش رو به کاخ برسونه و پاداش خودش رو از تزار بگیره و شادخت رو هم به زنی اختیار کنه تزار همچنین به خدمتکارانش دستور داد که به همه مهمانخانه ها و کاروانسراهای سراهای شاراها برن و از مسافران تحقیق کنن و ببینن آیا کسی میتونه مردی رو که این کارهای بزرگ رو انجام داده بشناسه و اگر چون این کسی رو پیدا کردن بدون درنگ به تزار گزارش بدن. اون قول داد که هر کس چون این رو بهش برسونه پاداش بسیار خوبی بگیره. فرمان تزار بی درنگ اجرا شد. خدمتکاران اون به همه مسافرخونه ها سر زدند و درباره پهلوان مرموز از مسافران پرسجو کردند کارهای عجیبش رو شر دادند اما از این خوشش ها هیچ سودی نبردند همه مردمان شجاعت و دلیری اون رو ستایش میکردند اما کسی اون رو نمی بعد از مدتی سه برادر که هنوز دنبال خواهرانشون میگشتند به مسافرخونه ای وارد شدند و تصمیم گرفتند در اونجا شام بخورند. شب رو به روز برسونن. بعد از خوردن شام نشستند و با هم مشغول صحبت شدن. صاحب مهمان خانه هم پیششون اومد و با اونها شروع به صحبت کرد. و بعد از اونکه از کارهای قهرمانی یکی از برادران تعریفها و تمجیدها کرد از اونا پرسید که آیا چنین داستانی درباره خودشون میدونن؟ برادر بزرگتر که با خوردن چند جام زبانش باز شده بود داستان خودش رو به این گونه شهر داد. بعد از اینکه من و برادرانم وارد مسیر جستجوی خواهرانمون شدیم در اولین شب حرکتمون در بین جنگلی بزرگ به کنار دریاچه رسیدیم من به برادرانم گفتم که راحت بخوابن و من تا صبح بیدار میمونم اونها خوابیدن و من در کنار آتش بیدار نشستم نیمه های شب یک دفعه از دریاچه بیرون اومد و قصد جان ما رو کرد اون با بیشرمی شرمی که ما رو تیکه تیکه کنه و بخوره. من چاقوی خودم رو برداشتم و سرش رو از تنش جدا کردم و گوشهاش رو بریدم. اگر حرفم رو باور نمی‌کنید، این هم گوشهای اژدها بگیرید و تماشا کنید. برادر بزرگ بعد از گفتن این حرف گوشهای اژدها رو از جیب خودش بیرون آورد و روی میز انداخت بعد از اون، برادر دوم هم راز خودش رو فاش کرد و گفت در شب دوم سفرمون که در پای کوهی کنار دریاچه فرود اومده بودیم من اجدهای دو سری رو کشتم باور نمیکنید اینم گوشه اژدها اون هم چهار گوش اجدهارو رو از جیبای خودش بیرون آورد و روی میز انداخت برادر سوم خاموش موند و چیزی نگفت صاحب مسافرخونه رو به اون کرد و گفت آیا تو هیچ کار دلیرانه ای به عمر خودت انجام ندادی به راستی که برادران دلیری و شایستگی بزرگی از خودشون نشون دادن. تزارزادی جوان لب باز کرد و گفت: من هم کار کوچک و که هم عرضش کردم که میخوام اون رو برای شما نقل کنم. وقتی که شب سوم فرا رسید و شما برادرانم خوابیدید من در اون شب تاریک در کنار دریاچه به نگهبانی ایستادم. نیمه های شب دریاچه به تلاطم اومد و اجده های سه سر از اون بیرون اومد و بر ما حمله کرد من شمشیر کشیدم و به دفاع از خودم و برادرانم تونستم سرهای اونها یکی بعد از دیگری از تنش جدا کنم و بعد شش گوش اون رو هم بریدم این هم گوشهای اون اون گوشها رو از جیباش بیرون آورد و نشون داد دو برادر با تعجب اون نگاه کردند بعد گوشهای اجدار رو برداشتند و تماشا کردند برادر کوچکتر شهر سرگذشت خودش رو ادامه داد و گفت در اون گیر و دار آب به روی آتش ریخت و اون رو خاموش کرد و من برای پیدا کردن آتشی که باهاش بتونم دوباره هیزوم ها رو روشن کنم از کنار دریاچه دور شدم. بعد از مقداری را رفتن در تاریکی به در قاری رسیدم که نه قول در اون نشسته بودند. و بعد برادر کوچک وقایی رو که اون شب اتفاق افتاده بود توضیح داد. دو برادر مرتب بهبه و چهچه و آفرین می گفتند. اما صاحب مسافرخونه وقت خودش رو تلف نکرد با عجله بر اسب خودش سوار شد و به سمت کاخ حرکت کرد اون خبرهای خوشی رو که در کاخ آرزومند و منتظر شنیدنش بودن با خودش میبرد تزار با شادمانی بسیار سخنان مرد رو گوش کرد و پول زیادیم به عنوان پاداش بهش هدیه داد بعد مردان خودش رو در پی سه هزارزادی جوان فرستاد چون سه برادر به تالار بار آم که در اون بزرگان و اعیان و اشراف کشور در اطراف تخت سلطنت گرد آمده بودند رسیدن، تزار روی به برادر جوان کرد و ازش پرسید، آیا راسته که همه این کارهای عجیب رو تو در این شهر انجام دادی؟ آیا تو بودی که قولها رو کشتی و جان دختر دلبند من رو از مرگ حتمی نجات دادی؟ جوان که چشم در چشم تزار دخته بود گفت، بله قربان، من همه این کارها رو کردم. پادشا گفت، پس تو با یگان دختر من عروسی می کنی. در نزد من میمونی، مشاور دربار من میشی و در کارهای کشورداری یا رویابرم میشی. و چون روزی من افتادم و مردم، به جای من بر تخت سلطنت مینشینی و به خیر و صلاح مردم حکومت می کنی. برای شما دو تزارزادی جوانم، دو دختر زیبا و اسیرزاده به زنی می گیرم. اگر هم دلتون بخواد که در اینجا بمونید، خونه مجللی برای هر می سازم. دو برادر بزرگتر از تزار سپاسگزاری کردند، ولی پیشنهاد کریمانی اون رو نپذیرفتند و گفتند که قبلا ازدواج کردند و تعریف کردند که به چه مقصد و هدفی وارد این مسیر شدند. اونها سخن خودشون رو اینطور پایان دادند که از کوششهای خودشون سودی نبردند و نتونستن خواهرانشون رو پیدا کنند. بعد از پایان گرفتن سخنان دو برادر، تزار بار دیگر از جوانترین اونها درخواست کرد که دامادش بشه و پیشش بمونه. برادر کوچکتر خواهش تزار را پذیرفت و در اونجا موند. بعد تزار دو قاطر که به هر یک کیسه‌هایی پر از در و گوهر بار کرده بودند، به دو برادر دیگه بخشید و اونها رو اجازه مرخصی داد. دو برادر به کشور خودشون برگشتند. چون ناچار بودند که پس از قیبتی طولانی به کارهای دولت خودشون رسیدگی کنند برادر جوانتر پیش تزار پیر موند دخترش رو به زنی گرفت و شاد و خرم روزگار گذروند اگر غم و نگرانی خواهران نگونبخت خودش رو نمیخورد و دلش از جانب اونها آسوده بود خیلی خوشحالتر و شادتر بود اون میخواست دوباره به جستجوی خواهرانش بره اما بسیار افسرده و پریشان بود که زن جوانش رو تا مدتی نامعلوم ترک میکنه. پدر زن تزارزاده هم حاضر نبود بهش اجازه بده که از دربار دور بشه. چون روز به روز احساس میکرد که در کارهای ملک و دولت بیشتر بهش نیازمنده. تزارزاده بنارچار در اونجا موند، اما هر روز افسرده تر و رنگ پریده تر میشد. یک روز تزار تصمیم گرفت که به شکار بره. قبل از بیرون رفتن از کاخ، دامادش رو پیش خودش صدا زد و کلیدهایی رو بهش داد و گفت: بهتره تو امروز در خونه بمونی. اینها کلید در نه اتاق در کاخ منه. تو میتونی در سه یا 4 اتاق رو باز کنی. در اونها سیم و زر و جنگ افزار های گرانبها و چیزهای قیمتی دیگه میتونی پیدا کنی. اگه کنجکاوی خیلی شدید بود، میتونی تا در 8 اتاق رو هم باز کنی. اما در نهمین اتاق رو به هیچ وج نباید باز کنی خوب گوش کن ببین چی میگم اینو به خاطر بسوار که هر وقت در نهمین اتاق رو باز کنی یک دفعه چند دیو هولناک به تو حمله میکنن تزار پیر بعد از این سفارش بر پشت زین اسبش قرار گرفت و با همراهانش از کاخ دور شد تزارزادی جوان بعد از اینکه صدای پای اسبان و شیپور همراهان به گوش نرسید به کاخ برگشت و خواست که در بسته اتاق رو باز کنه و ببینه که در اونها چه خبره. در آره که باز کرد، گرنجهای بسیاری در اونجا انباشته هم بود. همه ی اتاقهایی رو که اجازه باز کردن درها رو داشت باز کرد و سرانجام به مقابل در اتاق نهم رسید. در اونجا ایستاد و به فکر فرو رفت. به خودش گفت، در این اتاق چه چیزی ممکنه باشه که من نباید اونو ببینم؟ اما من دیگه بچه نیستم و در زندگی خودم چیزهای آور و شگفت زیادی رو هم تا حالا دیدم. حالا چرا مسیح یه مرد ترس رفتار کنم؟ اون این حرف رو با خودش گفت و بعد تصمیم گرفت که در اتاق نهم رو هم باز کنه. وقتی در اتاق رو باز کرد در برابر منظری عجیبی قرار گرفت. در بین اتاق مردی نشسته بود که زانوانش رو به میله آهنی بسته بودند. دور سندلی اون چهار تیر نصب کرده بودند و روی هر تیری صفحه آهنی نهاده بودند که گردن مرد رو مثل یک یقه دربر گرفته بود. دستهای مرد تا بالای آرنج در بین میله های آهنین بود و اون حتی به قدر یک بند انگشت هم نمیتونست کن بخوره. چشماش به چپ و راس میچرخیدند. در برابر اون تشت زرینی بود که شیر زرینی در بالای اون قرار داشت. آبی گوارا و خنک از اون برتش میریخت و در کنار اون جام زرین گوهر نشانی هم گذاشته بودند معلوم بود که مرد سخت تشنه است ولی دستش نه به آب می رسید و نه به جام وزیرزادی جوان از دیدن این منظره حراسانگیز بر خودش لرزید و گامی عقب رفت مرد زندانی که به تصمیم اون پی برده بود با التماس بهش نگاه کرد و صدا زد که ای جوان به خاطر خدا نرو و بیا تو تزارزاده دوباره وارد اون اتاق شد. مردی که به بند کشیده شده بود رو بهش کرد و گفت به خاطر خدا به من رحم کن و یک جام آب به من بده. از تشنگی دارم میمیرم. اگه تو دلسوز و مهربان باشی من هم زندگی دیگری بهت میبخشم. تزارزادی جوان کمی به فکر فرو رفت و با خودش گفت که بد نیست گذشته از زندگی خودش زندگی دیگه هم داشته باشه. پس جام زرین رو پر از آب خونه کرد و به مرد داد. زندانی آب رو لاجره سرکشید. کشید. بعد تزارزاده ازش پرسید. این مرد عجیب. بگو ببینم اسم چیه؟ زندانی در جوابش گفت. اسم من باش چلیغه. خواهش میکنم یک جام دیگه آب به من بده. و در عوض زندگی دیگری بهت میدم. داشتن سه زندگی اگرچه به نظر عجیب و غیر عادی میومد. خیلی هم مورد پسند جوان بود. پس اون جام رو برداشت و دوباره اون رو از آب پر کرد و به باشچلیق داد. می‌خواست از اتاق بیرون بره که زندانی یک باری دیگه اون رو صدا زد و گفت: ای پهلوان دلیر و شایسته، پیش من برگرد و گوش کن ببین چی میگم. جام رو دوباره بردار و پر از آب کن و اون رو بر سر من بریز. تو تا به حال دو کار نیک در باری من انجام دادی. اگر سومین کار نیک رو هم در باری من انجام بدی، پاداش من به تو زندگی سوم خواهد بود و تو میتونی در این دنیا بسی بیش از هر کسی دیگری عمر کنی. تزارزاده جامع آب رو برداشت، اون رو با آب پر کرد و به صورت زندانی پاشید. تا آب موهای باشچلیق رو تر کرد و از سرش به پایین ریخت، یک دفعه صدای شکستن آهن به گوش رسید و میله‌ها و یراق آهنی که دور زندانی قرار داشت در هم شکست و قطعه قطعه شد و بر زمین ریخت مرد که آزادی خودش رو به دست ورده بود روی دو پای خودش بلند شد و یک دفعه دو بال بزرگ و نیرومند بر دوشش رویید و او اونها رو باز کرد و تکون داد و از پنجره اتاق به بیرون پرید تزارزادی جوان با شلیق رو دید که در باغ کاخ فرود اومد و همسر زیبای اون رو که در اونجا نشسته بود و گلدزی میکرد دزدید و زیر بال خودش زد و به آسمان پرواز کرد و در پس ابرها ناپدید شد اون در پشت پنجره ایستاده بود و بختش برده بود که چطور خبر این پیشامد رو به پدرزن خودش بده و بعد از دادن خبر چه اتفاقی ممکنه بیفته بیچاره گیت شده بود و نمیدونست که غم و غصه گم شدن زن محبوبش رو بخوره یا از خشم پدرزنش بترسه اون نتونست تصمیمی در این باره بگیره با این همه وقتی تزار از شکار برگشت همه چیز رو بهش اعتراف کرد. تزار بعد از اینکه از بحت و گیجی ناشی از این ضربی ناگهانی به خودش اومد، خشمش خیلی بیشتر از قمقسش بود و نمیتونست از داماد خودش چیزی بپرسه. بالاخره رو بهش کرد و گفت: چرا این کارو کردی؟ مگه من تو رو از خطر آگاه نکرده بودم؟ مگه نگفته بودم که در اتاق نهم رو باز نکن؟ تزارزادیه جوان جواب داد: چرا چرا پدر گفته بودید اما خواهش میکنم از من از سبانی نباشید چون من هم مثل شما از این اتفاق خیلی متأسف و ناراحتم شما دخترتون رو از دست دادید و من زن محبوبم رو اما بدونید که تا باشچلیق خائن رو پیدا نکنم و زنم رو از چنگ اون در نیارم آرام نمی نشینم تزار سعی کرد که اون رو آروم کنه و گفت من نمیذارم تو بری چون اگه تو در پی اون بری تو هم مثل اون گم و گور می‌شی تو نمی‌دونی کیه من برای دربند در بند کشیدن اون بسیاری از سپاهیان و ثروتم را از دست داده بودم حالا که قولهای مردوم‌خوار سپاهیان منو نابود کردند تو نمیتونی سپاهی جمع‌آوری کنی و اون رو بگیری و اسیر کنی در چنین اوضاع و احوالی هر کوششی در این مورد دیوانگی محض پسرم، صبر کن صبر کن تا فرصت بهتری به دست بیاریم تزارزادی جوان اینطور وانمود کرد که پند پدرزنش رو پذیرفته مدتی پیش اون موند اما چون دید که اون تسلیم سرنوشت قمانگیز خودش شده و کاری نمیکنه نتونست بیشتر از این شکیبایی کنه. پنهانی از کاخ بیرون اومد مقداری پول با خودش برداشت بر اسبی نشست و به جستجوی باشتدیق رفت از شهری به شهر دیگه از دهکده به دهکدی دیگه میرفت و سراغ باششتیق رو می گرفت اما هیچکس نشانی از اون نمیدونست یک روز داشت از شهری که یک دفعه دختری از روی ایوان خانه اون رو صدا کرد و گفت ای تزارزادهٔ جوان از اسب پیاده شو و به باغ من بیا اون دعوت دختر رو پذیرفت و وارد باغ شد وقتی دختر رو دید که از ایوان پایین اومده و آغوش باز کرده و به طرف اون میدوه سخت تعجب کرد اما وقتی دختر نزدیکتر شد اون رو شناخت اون دختر خواهر بزرگش بود خواهر و برادر همدیگر را در آغوش کشیدند و سر و روی همدیگر رو بوسیدند. بعد از اون که هیجان و التهاب لحظات نخستین دیدار آروم شد، دختر اون رو به خانه خودش برد. از پلکان بالا رفتند و به اتاق دختر وارد شدند. دختر چند نازبالش آورد و به برادرش داد و بعد با هم نشستند و صحبت کردند. تزارزاده اول ازش پرسید که مردی که در اون شب هولناک به خواستگاری اون اومده و اون رو برداشت و با خودش برد کیه دختر در پاسخ گفت برادر جان شوهر من شاه اصفهانه و خودش هم اجداست بعد یک دفعه سخن خودش رو قطع کرد و یک لحظه گوش داد بعد فریاد زد که من صدای اونو رو که به خونه برمیگرده. باید هر چه زودتر تو رو پنهان کنم چون اون کینه ای سخت از برادران من در دل داره. بارها گفته که آرزوی کشته شدن اونها رو داره و اگر روزی یکی از اونها بر سر راهش قرار بگیره نمیتونه جون سالم از دستش به در ببره من سعی میکنم که اون رو رام کنم و بعد در باری تو چند کلمه حرف بزنم اما تا رامش نکردم مبادا از پناهگاه خودت بیرون بیای دختر بدون درنگ برادر خودش رو پنهان کرد خوشبختانه کسی اون رو ندیده بود و وقتی خدمتکاران اومدن و شام اجدار آوردند همه چیز حالت عادی داشت وقتی اژدها پروازکنان وارد و اتاق شد اشیایی اونجا مثل اینکه در برابر نور خورشید قرار گرفته باشند درخشیدند اژدها که با سر وصدا بو میکشید و به چپ و راست خودش نگاه میکرد با صدای بلندی گفت زن این بو از چیه؟ بوی آدمیزاد میشنوم زود بگو ببینم کی به کاخ من اومده زن جواب داد هیچ که از سر سرور من سعی نکن به من حقه بزنی من گول نمیخورم بهتره قبل از اینکه که خشنین بشم حقیقت رو به من بگی زن که سعی میکرد اون رو آروم کنه گفت چشم شوهر عزیزم میگم اما اول به این سوال من جواب بده تا بعد من بگم بگو ببینم اگه یکی از برادران منو ببینی که به اینجا اومده آیا صدمه و آزاری بهش میرسونی؟ شاه اجده گفت هر یک از دو برادر بزرگت به اینجا بیاد میکشمش و به سیخش میکشم و کبابش میکنم اما اگه برادر کوچکت به اینجا بیاد، آزاری بهش نمی چون اون بود که تو رو به من داد. زن بعد از شنیدن این حرف دیگه سگ در پنهان کردن برادرش نکرد و با شادمانی گفت، اون اینجاست، جوانترین برادرم، برادر زن تو به اینجا اومده. شاه اجدها گفت، زود باش اون رو پیش من بیار. زن دستور اون رو با خوشحالی انجام داد، چون چشم شاه اجدها به تزارزادی جوان افتاد، اون رو در آغوش کشید، صورتش رو بوسید و گفت: برادر، به خونه من خوش اومدی. تزارزادی جوان گفت: من هم خیلی شاد و خوشحالم که بعد از مدتی شما رو و خواهرم رو با هم میبینم. بعد اون چرا که براش اتفاق افتاده بود و کاری رو که میخواست انجام بده، برای اجدا و خواهرش شر داد. شاه اصفه فریاد زد که: دیوانگیه، دیوانگی مَز من دو روز پیش شنیدم که با شلیق آزاد شده و از فراز کشور من میگذره. من هفتصد اجده زیر فرمان خودم رو جمع کردم و سعی کردم که راه اون رو سد کنم. اما دریق که کاری از دستمون بر نیومد. اون که زن تو رو زیر بالش زده بود از روی کشور من پرواز کرد و رفت. من از تو خواهش میکنم که از سر این تصمیم ابلهانه بگذری و به خانی خودت برگردی. هرچه مال و ثروت از من می‌بخشم. اگر مال و ثروت به دردت بخوره اما تزارزادی جوان سرسخت بود و حاضر نمیشد از تصمیم خودش برگرده روز بعد موقع خداحافظی شاه اجدها که دید نمی تونه اون رو برتر بیاره و از تصمیم خودش برگردونه پری از بال خودش رو کند و بهش داد و گفت خوب گوش کن ببین چی میگم این پر رو بگیر و نگهدار. اگر به باش چلیق رسیدی و در خطر افتادی اون رو, رو روی آتش بگیر. من منو های زیر فرمانم بدون درنگ به کمک تو میایین تزارزاده پر رو گرفت و بعد خواهر و شوهر خواهره رو در آغوش گرفت و بوسید و به روی اسب خودش پرید و از اونجا دور شد بعد از مدتی اسب به شهر بزرگ دیگری وارد شد همچنان که در خیابانی پیش می‌رفت خانه ای باز شد و دختری اون رو صدا کرد و گفت ای تزارزاده جوان از اسب پیاده شو و به باغ من بیا جوان به سمت باغ رفت دختر آغوش باز کرد و به سمت اون دوید دل جوان از دیدن اون از شادی و خوشحالی پر شد چون اون خواهر میانیش بود خواهرش اون رو به برج بلندی برد درها رو بست و از حال و احوالش جویا شد تزارزاده که می دید خواهرش اون همه بهش محبت داره خیلی خوشحال شد و بعد از بیان سرگذشتش ازش پرسید خب خواهر عزیزم بگو ببینم اون که در اون شب هولناک به کاخ پدرمون اومده و تو رو به همسری خودش برگزید کیه؟ شوهر من شاه بازهاست. اون به‌زودی به اینجا برمیگرده. بهتره تورو در جایی پنهان کنم. چون اون گفته که برادران منو دوست نداره و اگه اونها رو ببینه بدون درنگ به قتل رسونتشون. زن قبل از بازگشت شاه بازها جای خوبی برای پنهان کردن برادرش پیدا کرد. موقعی که شاه بازها به سمت برج خودش برمیگشت برج از بادی که و از هم خوردن بالهای اون بلند میشد شد، به لرزه افتاد. خدمتکاران دردم شامش را آماده کردند، چون اون اغلب کچخلق و بی صبر بود و اونا از خشم اون خیلی میترسیدند. شاه بازها عبرود هم کشید و دوربر خودش رو بو کرد و به زن خودش گفت زن، من بوی آدمیزاد میشنوم. زن در جواب گفت نه شوهر عزیزم، کسی اینجا نیست؟ شاید باد این بورو از جای دیگه به مشام شما رسونده بعد به اصرار ازش خواست که بشینه و شامش رو بخوره چون دید که گرسنگیه شوهرش فرو نشسته بهش گفت راستی من هیچ چی نمیدونم که برادرانم در چه حالی هستند از روزی که زنتو شدم خبری از اونها ندارم بگو ببینم اگه اتفاقی یکی از اونها به اینجا بیاد باهاش چطور رفتار میکنه دو برادر بزرگت رو که وقتی به خواستگاری تو پیششون رفتم توهین و تحقیرم کردن میکشم. اما به برادر کوچکیت که اون شب با مهربانی برخورد کرد، کوچکترین آزاری نمیرسونم. زن خوشحال شد و گفت که برادرش به اونجا اومده و بعد رفت و اون رو پیش شاه بازها آورد. شاه با دیدن اون بلند شد و در آغوشش گرفت و صورتش رو بوسید و گفت برادر عزیزم، به خونه من خوش اومدی بعد از اون دعوت کرد که بنشینه و با همدیگه شام بخورن. اونها مدتی دراز با هم نشستند و بعد از خوردن و آشامیدن به صحبت پرداختند. مرد جوان به شاه بازها گفت که چه هدف و مقصدی داره. شاه بازها با نگرانی و ناراحتی بسیار بهش نگاه کرد و نصیحتش کرد که عجله نکنه و منتظر فرصت بهتری بشه و بعد اضافه کرد که من الان چیزی درباره اون به تو میگم. چند روز پیش که اون زن تو رو دزدیده بود و با خودش می برد من با پنج هزار باز زیر فرمانم در کمینش نشستیم و بر اون تاختیم جنگی بی امان بین ما صورت گرفت خون های بسیاری ریخته شد ولی نتونستیم جلوی اون رو بگیریم حالا تو میخوای یک تنه به جنگ اون بری و اسیرش کنی من به تو نصیحت میکنم که به خونت برگردی هر قدر زر و گوهر هم دلت بخواد به تو میدم که برداری و با خودت ببری تزار گفت ای شاه شهبازان از لطف و محبتت بسیار متشکرم اما من تا باشچلیق رو پیدا نکنم به خونه گردم و بعد اضافه کرد من سه جان بیشتر از جان خودم دارم چرا نتونم اونو بگیرم شاه بازا چون اظم اون رو راسختید و فهمید که از جستجوی دشمن خودش دست نمیکشه پری از یکی از بالای خودش کند و بهش داد و گفت این پر رو بگیر و هر وقت در محلکه افتادی روی آتیش بگیر تا من به یک آن با همه سپاهیانم به کمکت بیایم. جوان پر رو گرفت با خواهر و شوهر خوهرش خداحافظی کرد و از اونجا رفت. بعد از مدتی راهنوردی به شهر ای رسید. در اونجا هم دختری اون رو به باغ خودش صدا زد و جوان اون رو شناخت که خواهر سومش بود. بعد از اون که خواهر و برادر همدیگر رو شناختند و خیلی خوشحال شدند و همدیگر رو در آغوش گرفتن، خواهر اسب برادر رو به استبل برد. برادرش رو به اتاق خودش راهنمایی کرد و بهش گفت که شوهرش شاه اقاب هاست و چون میدونست که شوهرش برادرانش رو دوست نداره مثل دو خواهر دیگه برادرش رو پنهان کرد. طولی نکشید که شاه عقاب ها به خونه برگشت و گفت زن، بو ی آدمیزاد میشنوم زود بگو ببینم کی به خونه من اومده؟ شوهر عزیزم بدون شک شما بسیار گرسنه هستید. بهتر اول شام خودتون رو بخورید. و شام اون رو روی میز نهاد زن و شوهر پشت میز نشستند و شام خوردن. بعد از ساعتی زن جوان از هر دری با شوهر خودش سخن گفت بعد صحبت رو به برادران خودش کشید و ازش پرسید که اگر یکی از اونها به دیدن اون بیاد چطور بااش رفتار میکنه شاه اقابها در جواب زنش گفت دو برادر بزرگت رو میکشم اما به برادر کوچکت آسیبی نمیرسونم من اون رو دوست دارم و خیلی دلم میخواد که خدمتی اگر از دستم براد به اون بکنم. سرور گرامی با این حرفایی که زدی منو بی اندازه خوشحال کردی. آگاه باش که برادر کوچیکم به خونه ما اومده. اومده که بعد از سالها دوری منو ببینه. بادیشای اقابها به خدمتکاران خودش دستور داد که تزارزاده رو پیشش بیارن. و چون وارد شد بلند شد در آغوشش کشید و صورتش رو بوسید و خوش آمد گفت. و به خوردن شام دعوتش کرد مرد جوان در کنار خواهر و شوهر خواهر خودش نشست و شام خورد و با اونها از هر دری صحبت کرد بالاخره پادشاه عقابا ازش پرسید بگو ببینم کدوم باد موافق و اقبال بلند تو رو به اینجا راهنمایی کرده آیا میدونستی که خواهرت در اینجاست نه برادر عزیزم بخت و اقبال منو به اینجا نکشونده بلکه حادثه غمناک منو به اینجا آورد بعد همه چیز رو در باره یه باشچلیق بهش گفت و شوهر خواهر بعد از شنیدن سرگذشت اون بهش گفت که برادر گرامی، باشچلیق بدزاد رو به حال خودش رها کن چون هیچ سلاحی در اون کارگر نیست و کسی از عده اون بر نمیاد اگر تو با اون در بیفتی نه تنها نمیتونی زنت رو از چنگش در بیاری بلکه خودت رو هم بکشتن میری بهتره در اینجا در کنار ما بمونی اما شاه اقابه هم نتونست اون رو از تصمیمی که داشت منصرف کنه. روز بعد جوان تصمیم گرفت که سفر پرخطر خودش رو دوباره از سر بگیره. پادشاه اقابه ها که خیلی خشمگین بود پری از یکی از بالهای خودش کند و بهش داد گفت اینو بگیر اگه در محلکه افتادی بسوزونش تا من بیدرنگ با همه اقابه های زیر فرمانم به کمکت بیاییم. تزرزدی جوان، اون پر رو هم گرفت و در جیب خودش کنار دو پر دیگه قرار داد و راه خودش رو در پیش گرفت. از شهری به شهری و از دهکده‌ی به دهکده‌ی دیگه میرفت و جایی صبر نمیکرد، اما نشانی از دشمن نابکار خودش پیدا نمیکرد. روزی در جنگلی با آسم میرفت که یکدفعه از دور آتشی رو دید که در کنار قاری شعله میکشه. به اون سمت رفت و دید که زنی از قار بیرون میاد. از دیدن زن به شدت دلش به تبش افتاد چون اون زن خودش بود. بعد از اون که زبان زن از شوق دیدار شوهرش باز شد بهش گفت شوهر عزیزم چطور به اینجا اومدی و منو پیدا کردی؟ من تقریبا امید پیدا کردنیز رو از دست داده بودم. تزارزاده بعد از اونکه داستان خودش رو از روزی که اون رو از دست داده بود توضیح داد بهش گفت بیا از فرصت استفاده کنیم و با هم فرار کنیم زن سر خودش را با غم و اندوه زیاد تکون داد و گفت گمان نمیکنم این کار ما سودی داشته باشه با شلیق به زودی به اینجا میاد و چون من رو نبینه بدون درنگ پگ ما میاد و یقین دارم که تو رو میکشه و منو دوباره به اینجا برمیگردونه اما جوان معنای ترس رو نمیدونست و بعد از گفتگوی بسیار زنش رو راضی کرد که هاش فرار کنه اون دو هنوز چندان از قار دور نشده بودند که با شلیق برگشت و چون زن شد در اونجا ندید فهمید که چه اتفاقی افتاده بدون درنگ پی اونها روان شد و به زودی خودش رو به اون دو نفر رسوند و فریاد زد ای تزار زاده نادان خیال کردی میتونی زن من رو بدزدی و فرار کنی و دست زن رو از دست اون بیرون کشید و اضافه کرد این بار تو رو میبخشم و نمیکشم تون فراموش نکردم که سه زندگی بهت بخشیدم اما بدون اگه دوباره از این شوخی‌ها با من بکنید دیگه نمیبخشمت و میکشمت. باشلیق زن رو زیر بال خودش گرفت و به غار خودش برگشت. تزارزاده افسرده و غمگین موند و به فکر فرو رفت که چیکار کنه. بالاخره تصمیم گرفت که یک بار دیگه هم سعی کنه شاید بتونه موفق بشه. بعد روز بعد وقتی فهمید که باشلیق از غار بیرون رفته، پیش زنش رفت و اون رو برداشت و فرار کرد. اما خوشی اون دو نفر خیلی طول نکشید چون با شلیق دوباره مثل باد خودش رو به اونجا رسوند و داد زد ای تزارزادی جوان بگو چه نوع مرگی رو انتخاب میکنی با تیر و کمان بکشمد یا با شمشیر زود باش و جواب بده تزارزاده گفت به قولی که دادی وفا کن در اون موقع که اسیر بند بودی به من قول دادی که سه زندگی به من ببخشی اما تنها یک زندگی به من بخشیدی باش چلیق با خودش گفت که راست میگه اگه اون نبود من هنوز در بند اسیر بودم پس نرمتر شد و گفت بسیار خوب من زندگی دومت رو هم بخشیدم ولی بدون که این آخرین باره که تو رو میبخشم اگه بار دیگه برگردی و بخوایی زنت رو برداری و فرار کنی دیگه نمیبخشمت و قسم میخورم که تو رو بکشم بعد زن رو که از پریشانی و ناراحتی میلرزید برداشت و با خودش برد تزارزاده در کندی درختی نشست و به فکر فرو رفت که چطور زنش رو از چنگ اون دیو بدزاد نجات بده بعد با خودش گفت چرا از باشلیق بترسم من که دو زندگی دیگه هم دارم یکی زندگی طبیعی و دومی زندگی که اون به من بخشیده یک روز دیگه وقتی مطمئن شد که باشلیق از غار بیرون رفته و زنش تنها مونده دوباره به اونجا رفت و زنش خواست که بهش فرار کنه زن نمیخواست فرار کنه و بهش گفت خفه فرار ما چه فایده ای داره من مطمئنم که باشلی خودش رو به ما میرسونه و هم من رو میگیره و به قار میگردونه و هم تو رو میکشه و تنها رشته امید منو پاره میکنه با این همه نتونست بیشتر از این طاقت بیاره و با شوهر خودش فرار کرد اما باشلیق این بار هم در پی اونها به پرواز در اومد و وقتی خودش رو به اون دو نفر رسوند با فریادی هراسنگیز به گفت ای مرد پست کجا فرار میکنی همونجا بیست. این بار دیگه تو را نمیبخشم زمان مرگت فرار رسیده تزارزاده در جواب گفت تو وقتی بعد از اون همه خوبی که در حقت کرده بودم زنم رو دزدیدی فهمیدم که تا چه حد پس تو نابکاری اما آخرین کلمات تو معنای دیگه ای داشت آیا تو به قول خودت وفا نمیکنی به یاد بیار که وقتی آب بر سرت میریختم سومین زندگی رو هم به من بخشیدی با شلیق گفت پس به همین دلیل این آخرین باری خواهد بود که رفتار ناپسند تو رو می بخشم خب خوب سومین بار هم زندگیت رو به تو بخشیدم تو می خوام به قول خودم وفا کنم من به تو اجازه نمیدم که به من بگی به قول خودم وفا نکردم اما به یاد داشته باش که الان دیگه تنها همون زندگی رو داری که خداوند به تو بخشیده سعی کن اون رو از دست ندی جوان بعد از این ناکامی ای جز برگشت به خونه نداشت خیلی غمگین و افسرده بود و یک دم نمیتونست فکر زنش رو از سرش بیرون کنه چون به فضای بازی در جنگل رسید آواز پرندگان اون رو متوجه خودش کرد سر بالا کرد و یک دفعه پری رو دید که از بال مرغ کنده شده بال در هوا چرخ زد و اومد و بر سر اسب افتاد چون چشم جوان به پر مرغ افتاد یک دفعه به یاد پرهای افتاد که شوهر بهش داده بودند دوباره نور امیدی در دلش درخشید و به خودش گفت نه، نباید ناامید بشم شوهر به من قول دادن که هر وقت در مشکلی گیر کنم به کمکم بیان چرا ناامید بشم؟ درسته که من یک تنه نمیتونم در برابر باش چلیق بیستم اما حالا پر اونها رو میسوزنم ببینم آیا به کمکم میان یا نه تزارزاده دوباره به سمت آر برگشت و کنار اون در جایی پنهان شد چون با باشلیق از اونجا بیرون اومد و پرواز کرد و دور شد اون هم زن خودش رو صدا کرد زن وقتی صدای اون رو شنید و از غار بیرون اومد و چشمش بهش افتاد از ترس و وحشت بر خودش لرزید و گفت ای شوهر نادانم بازم به اینجا برگشتی مگه از جون خودت سیر و بیزار شدی که نمیتونی صبر کنی تو فرصت مناسبی به دستت بیاد من چه بدبختم که باید تو برای همیشه از دست بدم تزار زاده که اون رو با شهر قولی که شوهر بهش به داده بودن آروم کنه. بعد پرها رو برای اثبات گفتهی خودش بهش نشون داد و گفت خب، حالا فهمیدی که چرا خودم رو به مخاطر انداختم؟ بیا قبل از اینکه برگرده با هم فرار کنیم. اما این بار هم مثل بارهای قبل با شلیق خودش رو به اونها رسوند و داد زد همونجا بیز ای تزارزاده نادان این بار دیگه نمیتونی جون سالم به در ببری تزار زاده دم در پرها رو با دو سنگ آتش زنه از جیب بیرون آورد سنگ ها رو به هم زد تا جرقی زدند جرقه در پرها افتاد و اونها رو سوزوند اما با شلیق که اون رو گرفته بود با خشم و تندی شمشیرش رو از نیام بیرون کشید و اون رو بدونیم کرد در همون لحظه که تزارزاده بیچاره بیجان بر زمین افتاد حادثه شگفت انگیزی اتفاق افتاد یک دفعه سراسر آسمان تیره شد انگار ابر سیاه روی خورشید رو پوشوند این ابر سیاه سپاهیان سه شوهر خوهر اون بودند که به کمکش اومدند و بال بادی هراسناک برانگیخته بود سه پادشاه پادشاه اجدها پادشاه شهبازان و پادشاه ها با همه سپاهیان خودشون به کمک برادرزن شتافتند اونها بر سر باشلیق ریختند و جنگی بیامان رو باهاش آغاز کردند اما با اینکه خون بسیار ریخته شد با شلیخ تونست زن زیبارو رو زیر بال خودش بزنه و از چنگ دشمنانش فرار کنه پادشاهای اژدها ستن از تیز پرترین اژدها رو پیش خودش صدا زد و بهشون گفت در چه مدتی میتونید به اردن مقدس برید و مقداری از آب رود اردن بیارید و به اینجا بیایید اجدهای نخستین گفت من در نیم ساعت این کار رو میکنم دومی گفت من در یک ربع ساعت این کار رو میکنم سرو می گفت من در نه دقیقه این کارو انجام میدم. شاه بهش دستور داد که هر چه زودتر به اونجا بره و با مقداری آب رود اردن برگرده. اجدا در حالی که زبانهای آتش از دهانش بیرون میزد، به هوا برخاست و در یک چشم به هم زدن از دیدها ناپدید شد و همچنان که گفته بود بعد از نه دقیقه برگشت و شیشه پر از آب مقدس از رود خونه اردن رو با خودش آورد. شامگاهان که با شلیق به قاهره زن جوان با خوشرویی و مهربانی به استقبالش رفت بعد در قار در کنارش نشست و از هر دری با اون سخن گفت و از زور و نیروش تعریف ها کرد و گفت که به شجاعت و نیرومندی اون مباهات میکنه اون شب با شلیق از زن تزارزاده بسیار راضی و ممنون شد و شامش رو با شادی بسیار خورد زن بالاخره ازش پرسید بگو ببینم زور و نیروی تو در کدوم عضو بدن جا داره باشلیق جواب داد عزیزم زور و نیروی من در شمشیرمه اون به طرف شمشیر که از دیوار قار آویزون بود رفت و در برابر اون زانو زد و دست به دعا برداشت باشلیق که از دیدن اون خندش گرفته بود که نزدیک بود قشکنه گفت ای زن نادان نیروی من در شمشیرم نیست در کمانمه زن به طرف کمان رفت و دوباره شروع به خوندن دعا کرد اما هیچ اتفاقی نیفتاد شلیق که اون رو نگاه میکرد گفت بیگمان کسی به تو گفته که گولم بزنی و رازم رو کشف بکنی اگر شوهرت رو نکشته باشم بیگمان اون تو رو به این کار واداشته زن در جواب گفت آه باش شدیق سرسخت اون مرده تو خودت میدونی که اون رو کشتی و دیگه کسی جرعت نمی نمیکنه به این قار بیاد و به خشم تو دچار بشه چون چند روز بعد شوهر به نزدش اومد تا نتیجه رو بدونه زن بهش گفت که هنوز نتونسته به اون پی ببره اون بسیار باهوش و بجنسه. شوهرش ازش خواست که بیشتر سعی کنه و دوباره از پیش اون رفت. زن روز بعد با شدیق رو بسیار خوشحال و سرحال دید و بهش اصرار کرد و شراب فراوان بهش داد تا بنوشه و در اون حال اینطور وانمود کرد که شیفتگی زور و توانایی اون شده و اون رو ستود و گفت که در دنیا پهلوانی به و توانایی اون پیدا نمیشه. با از روی خودهای خودپسندی گفتهای زن رو باور کرد و فکر کرد که راستی شیفتگی زور و قدرتش شده و دوستش داره. به خاطر همین بهش گفت الان که راستی دوستم داری و به زور و توانایی من مباهات می رازم رو بهت میگم. زن عزیزم، بدون که در کوهی بلند که از اینجا بسیار دوره، روبایی هست که پرندهی در دل اون زندگی میکنه زور و نیروی من، در دل اون پرنده نهفته است، اما نه و نگران نباش، اون روبا رو کسی نمیتونه به دام بندازه، چون اون میتونه به سرعت تغییر شکل بده. فردا که شد و باش شلیق از غار بیرون رفت، زن جوان به پناگاه شوهر خودش رفت و اون چرا که از دهانش شنیده بود بهش گفت. تزارزاده هم بر اسب خودش نشست و به تاخت پیش شوهر رفت و اونها رو از اون چه شنیده بود آگاه کرد. اونها هم به سپاهیان خودشون فرمان حرکت دادند. تزارزاده رو بر پشت خودشون سوار کردند و بالهاشون رو باز کردند و به آسمان بلند شدند. بر بالای ابرها به پرواز در اومدند و خودشون رو به کوه جایگاه روبا رسندند. اول به اقابها فرمان حمله داده شد که روبا رو بگیرند. اقابها به جستجوی اون رفتند و چون اون رو دیدند در صدد شکار کردنش بر اومدند. ولی روبا به تندی از چنگ اونها فرار کرد و خودش رو در دریاچه که در بین کوهساران بود انداخت و در اونجا به صورت مرقابی ششبالی در اومد. بعد بازها با پنجه های نیرومند خودشون بر اون پرندگی عجیب حمله کردند. اما یک دفعه اون ششبال به حرکت در اومد و مرغ به هوا بلند شد. پس اجده سر در پی اون نهادند و از هر سو شعله‌های های آتیش بر اون فرو باریدند. اما آتش در بالهای پرندگی شگفتانگیز در نیمی گرفت. پرنده شتابان فرود اومد و بر زمین قرار گرفت و دوباره به صورت روباه درومد در این دم شهبازها با منقار بر اون حمله کردند و دیگر هم به کمک اونها اومدند و روباه رو گرفتند سپادشا ها به سربازان خودشون فرمان دادند که آتش بزرگی روشن کنند بعد روباه رو کشتند شکمش رو باز کردند و پرنده رو از اون بیرون آوردند و به بین شوله های آتیش که جسد روباه دیف سفت در اونی سخت انداختند. در اون دم که پرنده در آتیش افتاد با شلیق در غار خودش نشسته بود. یک دفعه دست بر قلبش نهاد و پیش از اون که بتونه فریادی بزنه افتاد و مرد. تسارزادی جوان با شوهر به غار برگشتند و زن رو پیدا کردند. به نظر نمیاد که در دنیا کسی بیشتر از اون زن جوان که شوهر مهربان و دلیر خودش رو دیده بود خوشحال شده باشه. اجدهای خوشخوی زن و شوهر را رو برپشت خودش نشوند و به خونشون برگردوند. تزار پیر چون دختر و دامادش رو دید از خوشحالی به گریه افتاد. بعد جشنی بزرگ به افتخار سه پادشاه که زن و شوهر خوشبخت رو به هم رسونده بودن برپا کردند. زن و شوهر از اون پس به شادی خورمی به سر بردن و کشورشون هم از صلح و صفا و سعادت و نعمت برخوردار گشت. چون دیگه دشمنی نداشت و دعای خیر ملت همیشه و در همه جا با اونها بود. این هم از داستان زیبای باشدیق. طولانی شد اما زیبا بود. امیدوارم که لذت برده باشید. روز و روزگار خوش.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 همه و همه و همه در کانال ترگرامی هزار افسان داستانهای افثانهی صوتی ادساین مهران دوستی